کسی گفته جایز هست هیچ کس گفت جائز هست میگن کسی حلال بکنه ملعون هست اما اگر کسی حلال کر نکاح حلال میشتوا دوباره تصحیح خوف چیز دیگر است، خود گناه کار چیز دیگر است. گناه با امیر کسی حلال کنه کسی اکراب حلال کر طلاق گرفت اگر بینیت حلال گفت اینو بگیر حلالش کن دوباره طلاقش بده با, با این شرایط و قراردار این حرام است. امنقه شرایط نبود قرارداد نبود این آقا طلاق داد ادت تمام شد بعد از پایان ادت کسی دیگه اقدش کرد دوباره اون هم طلاق داد ادت تمام شد برای همسر اول حلال می شود این حلال می شود حدیث استاخل استحی بخاری آمده به کتاب و طلاق آمده که استعابی آمد با ازدواج کرده بود با عبد بعد که ازدواج کرد طلاقش داد و طلاقش داد اومد دوباره ازدواج دیگری کرد و دوباره شکاها پیش نبی کریم صلی اللہ وسلم گفتی یا رسول اللہ این مردی کمان گرفتا نامر در این جوری کرد این جوریه یعنی خیر در این نیست شول هست و نبی کریم فرمودن که نه، نه، نا جائز نیست که حتا تزوقی من اصیلتیه و یزوق من اصیلتکی اون باید اصل تو رو بخوره و تو باید اصل اون رو بخوری بعد برای همسر اولت حلال میشی اینجا نبی کی فرمودن که تا زمانی صورت نگیرد برای همسر اول راه نداری اون در بای درواسیه پرسیدن که آیا مثلی کی میخای پیشهروار درگردی گفت بخ بله گفت نه راه نداره بعد پس اول حلال بشی ازین بعد پیش اون میتوانی بری شما به این صورتجا حکم فرمودن پس حلال اگر به شرایط واشئ قطعی جایز است جائز نیست